اما مطلب دیگری که مشغول شدی این بود که امیر المومنین الله و واهر و سلام موارد این خطبه دو خطی سخطی تو نهجل فراغه موجوده راه رسیدن به کمال را بیان کرد فرموده قد احیا اقل و امات نفسه حتی دقیق جدیل ولتو فقلیدو و لگو بارون کثیر فبرق لگو لانون کثیر البر فلافعته الابواب الابواب سلامه و محل الاقامه کسی که عقل خود رو زنده کند و خواسته های نفسانی خود رو بمیراند و نتیجتا مشکلاتش آسون شود و مزاج قوی و مثلا کذا و کذاش ضعیف شود و خاصههاش ضعف و محود بشود, بنابراین سختیها بشود. سختیها شود ونابرا این سختی ها درش آسون می شود. اگر سختی ها شد، نوری در دل او تابد برقه میزند کسی رو برق زیادی در دلش میزند که این برقه ها اینو هی هدایت میکنه از این در به اون در از این کمال به اون کمال تا میرسونتش به محل اقامه و دار سلامت میرسونه به دار سلامت دار سلامت از کجاست عرض کردم یکی از اسمای بهش دار و سلام هست لهم دار و این به رهو و رلیه هم جمله اولش این است که قد احیا اقل. اقل خودش رو زنده کن، زنده کردن اقل یعنی اون مطالب یکی از اصلا احتمالاتش اون مطالب و حقایقی را که خدای تعالی در دل انسان نهفته و به فطرت انسان او رو به انسان داده و میتواند انسان اگر به خودش مراجعه کنه او رو بیابه او رو زنده کنه توی از این از کردم که نهجل بر همین خوده اولش و من خدا آقا پیغمبران رو فرستاد یه از تعدو هم می و یزکرو هم منسی نعمته و یثیرو علیهم دفاعن الاغول اون نهفته های تو عقلش رو اینا رو بزنید ببینید. منظور فرآهس این حیات قلب از توحید اول بسم الله از توحید حیاتوند حیات تو به یک علم ها و به یک عمل ها و به یک اخلاق اولین است اول قدمش توحیده خدا را بشناس شناخته به خدای تعالی که اون ممنی صحیح و کاملش و عمده باور داشتنش باورش بیاد بخوردم هم جوری چیزای بلده ولی هنوز اثر عملی نداره توی زندگی کسی که واقعا باورش بیاد این مطلب بعضی از بزرگان میگنم این توحید درست حسابی و, و کامل رو اگه درست کردی همه کارات بباشهاش درست میشه به خیلی زحمت نداره اخلاق درست میشه تمام اخلاق و صفات اخلاقیه میدونی چقدر سخت دارم اصلاحش کنه یکی ای کسی این موقع حسد خودش رو اصلاح کنه موقع بخل خودش رو درست کنه یا آقای گفته بود که منسان شش سال زحمت می کشه. کتاب اخلاق میکنه اینجوری کنه، اینجوری کنه، اینجوری کنی تا از من بره مطالب اونام درسته خوبا من زحمت هم کشیدم ولی من میشه این انسان حریف خودش میشه نمیشه ولی که یا آقایی از کردم فرموده بود من یه راه رو یاد میدم خوب زود درست میشه کارات اگه عمل کنی و درست حسابی پاش بایسی با اونست که خدا رو باور کنی باور کنی خدا رو با صفات کمالیت یه مبدع هستی داریم که تمام هستی های همه هستی همه به دست لبست و از همه رحیمتر و به همه مطلع و حاجت همه رو میداند و از پدر مهربان, مهربان تر است رحمان است و رحیم است و کریم است و ودود است و غفور است اله ماشاءالله باور اومده یا نه اومده یا؟ اگه آدم باورش یاد خیلی کارش درست میشه اگر یه کسی باور کردین مطلب آیا میشه دیگه دلش به کسی بند باشه توکل به خدا نداشته باشه توکل به خدا و سنخ به قول ما الفاظ نیست توکلتو الله لبز نیست توکل توکل نیست که دلم به غیر او وست نیست هیچ برای من تو این دنیا از پوچکترین ذره تا بزرگترین کره کوچکترین کاری نمیتواند بکند مگر به خواست او و از کالا سهود و لله هم مالک المال تو ات الملک منتشا و تنزه الملک منتشا و تو از منتشا و تو زل منتشا بید خیل انك كل خیل اینکه على لا بيد غیرک زیادتی و نقصی و و الهی فمن اگر تو اعتاق کنی کی میتونه جلوشو بگیره اگر تو ندی کی میتونه بده این حقیقت توحید حقیقت توحید که در انسان پیدا شد می میخونی کم آقا شده دل از همه چی بریده بعد این که دل از همه چی ببره دیگه مثلا فرض کنید که خوشحال میشه از اینکه فلان آقا به من همین کاری کرد، کمکی کرد. اون وافری نداره. البته تشکر وظیفه است. وقتی یکی به تو احسان کرد، وظیفه خدایی شین که از او تشکر کنی. ولی عرض میشه اول از خدا باید تشکر کنی که به دلای این انداخته این مطلبی را. دل به کسی بسته نیست. اون حالت توکل بر آدم پیدا میشه. و نمیتوک کل علالله را هوا هست اگر کسی به خدا توکر کند اون کافای کفایت می کند اون را جوز روایت داره که ابراهیم علیه السلام را که بردن از اون بالای هر پرتش کنند تو آتش جبرئیل اومد گفتش که با من کار داری گفتم که مثل تبیر به این تبدیر که تو هم مثل من بنده زعیفی هستی با تو کار ندار وقتی این کلمه رو گفت به جبرئیل توی روایت در ذهنم اینه البته امروز که مراجعه نکردم که داشت ابراهیم الازی و وفا, وفا کرد به اون گفته خودش وفا کرد به گفته خودش که چی گفته بود وقتی می بردنش به سمت آتش می خواستن گفت حسبی الله و کف خدا کفایت می کنه منو دیل آرام دیل مطمئه ساکن می شه اینجور رو بشه همون یک کلمه توبیه بشه درست شده هزم شود به این که یه روایت که همینجوری برخوردم براتون میخونم فرموند به این که من سکن قلبهو العلم بالله سکنه عن الخال کسی که دلش علم پیدا کرد یقین پیدا کرد به خدا و خدای تعالی را با اون کمالاتش میشناسد این دلش که قرض شد و علم پیدا کرد به خدا سکنه الغنا عن الخوف دیگه از این خلق بی‌نیازه ایوم حالتی گداییش از بین میره میگه آقا آقا سیور کن ولی زاد به جبرئیل گفتش نمان به تو کاری نداره ایبر چیه ایلام فیلی اثری تو عالم قائل نیم تو فاری ند باورش اگر آمده حالی بر آدم پیدا می شدیه علیس الله به کافتن عبده قرآن را یادم درست بخونه چه کم باید به خدا بندشه که باید نمی کنه هر کسی عبدی داره یه قلامی داره این زندگیش اداره میکنه برش درست میکنه آیا خدا این طورت ادارتو نمی کنه؟ علایه چون رو به کاف نرده؟ نکردم من خوبکت کرد باور کرده بودم میدونین نیش آمین این مسئله بود؟ اگه من باور کرده بودم دیگه در معاملاتم دروق مگفتم دشت میکردم کمپروشی میکرد همه شباشه شباش درست میشه یا دفعه درست میشه از روشم آقای خوبی دویده اما یک کلمه یک کلمه درست کن باور کن ترتیب اثر بده وقت معلوم نیشه که چی خواهد شد خیلی خوب این حدیثم براتون بخونم و دیگه تمام شد این معرفت الله امسون من کل بحشه و صاحبون که کل رهده و نور من کل ظلمه و قوتون من کل ذهب اگه معرفت خدا در پیدا شد از هر وحشتی مونس داری این وحشت نه وحشت نداری هر جایی که تصور مطلب و خدا درست بکنه خیلی باید یه جوردیه هیچ جایی تصور نمیشه که من مونس نداشته باشم وقتی بندازنش تو توچه یه دونه از این برادرها برادر پدر مادری بودن با یوسف اون بقیهش اون در تدیهش غیر مادری نبود پدری بودن فقط اون برادر پدر و مادریه به اینا که از شاه اینا در ورده بودن اون قافله که اومدن به اینا از شاه در وردن این برادره به اون قافله سفارش کشه با این قراریم خوب معامله کنیم و این قراریم رو گوه یوسف علیه سلام سرمو لیسه من الله قربه و کسی که خدا داره که قریب نیم قریب اون کسی کسی زرشته باشه لیسه من الله قربه اینجور این هم آدم خدا رو بشناسه باور کنه ترتیب اثر عملی بده به سیمابو منو اگر عقل رو زنده کردی زندگی عقل و حیات عقل اون حیات انسانیت انسان انسان رو به عنوان انسان اون همون عقلشه که ممیز انسانه اگر به عنوان انسانیتت عقلتو زیاده کردی و خلاصه به تعبیر من انسان شدی ما همه کارات بیه درسته همه کارات درسته اگرم این من همینیست که هستی بیه خلاصه هست. اگرم نشدی همینجوری گذشته و بابیشم میگذره و تموم میشه ولی کار نکردی باید که به خور باشه نکرد. سلام آمد و آمد و